کتاب قصه‌های پریان سری زرشکی جلد اول و دوم نویسنده اندرو لانگ ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مایا سالار به نام خدا قصه شاهزاده دروغین یا حیات جاه طلب روزگاری خیات جوان آبرومندی به نام لباکان زندگی میکرد که در شهر اسکندریه در خدمت استادکار باهوشش بود و براش دوزندگی میکرد هیچکس اون رو کودن یا تنبل نمیدونست چون اگر میخواست کارش رو با نهایت دقت و با سرعت انجام میداد. البته به طور کلی کارش خالی از و ایراز هم نبود مثلا گاهی اوقات چنان تند و زود با نقص و کوک میزد که انگار در دستهاش آتیش افتاده باشه گاهی وقتها هم در روشهی می و قرقه در فکر و خیالات میشد به طوری که دیگه خیاتهای همکارش از سر عادت می گفتند لباکان امروز قیافه اشرافی به خودش گرفته. جمعه ها اون ردای قشنگش رو که با پسنداز پولهاش خریده بود می و به مسجد می رفت. بعد از نماز موقع بازگشت دوستانش به او روز به خیل می یا حالش رو می پرسیدن. و اون با اظهار محبت براشون دست کن میداد یا به صورت رضایت ای سرش رو به حرکت نمی آورد اگر دست برغذا صاحب کارش که گاهی اوقات چنین کاری انجام میداد به او می گفت لباکان واقعا مثل شاهزاده ها شدی اون بر سر کیف می اومد و پاسخ میداد تو هم متوجه شدی؟ یا خب من زمان درازی قرقه در فکر بودم اوزاد ها مدتها به همین شکل پیش رفت و صاحب کار لباکان کارهای نامعقول او را تحمل میکرد. چون به طور کلی اون آدمی خوب و مرد زرنگی بود روزی از غذا برادر سلطان که از اسکندریه می گذشت بران شد که ردای سلطنتیش را عوض کنه پس به دنبال استاد خیاط فرساد و اون هم دوخت ردا رو به بهترین شاگردش لباکان سپرد. شامگاه پس از اینکه همه از خیات خونه به خونه هاشون رفتن، شور و اشتیاقی در درون لباکان برانگیخته شد و به سراغ ردای سلطنتی آبیخته از دیوار رفت. اون مدتی به ردا خیره شد و پارچه فاخر و گلوزی باشکوهش رو تحسین کرد. سرانجام وقت رو تلف نکرد و دست کار شد. برای اینکه رادار ردا رو امتحان کنه اون رو پوشید. بیا و ببین. انگار ردای سلطانی برازنده خودش بود. اون در حالی که مقرورانه قدم زنان در اتاق بالا و پایین میرفت از خودش پرسید. مگه من از هر شازدادهی چی کم دارم؟ مگه استادکارم همیشه نمی گفت که مثل شاهزاده ها شدم؟ به نظرش رسید که حتما پسر سلطان ناشناسیه و سن آخر بران شد که فوراً پا به راه بیزاره و اصل ریشه واقعی خودش رو جستجو کنه. اون که فکر می کرد ردای باشکوه توسط چند پری مهربان براش فرستاده شده حواستش رو خیلی جمع کرد تا چنین هدیه گرانبههایی را رو از دست نده. همیه پولی رو که پس انداز کرده بود و برداشت و در دل تاریکی شب از دروازه اصلی اسکندری پا به بیرون گذاشت. سلطانزاده زاده جدید به هر جا که رفت تا حد زیادی کنجکاوی همه رو برانگیخت، چون ردای بی و رفتار شاهانش، با وضع او که پیاده سفر میکرد جور در نمیومد اگر کسی پرسشی میکرد اون فقط با حالتی رازناک و اینکه برای پیاده سفر کردنش دلایلی داره پاسخ میداد به هر حال بهزودی متوجه شد که با پیاده روی حس تمسخور دیگران رو برانگیخته پس سر از به پیر آرام اما نیر رو, رو به قیمتی ارزون داری کرد. یک روز در حالی که سوار مروه که نام اسبش بود یورتمه می میرفت سوار دیگری خودش رو به اون رسوند و گفت که با هم سفر کنند تا ضمن همصحبتی راه سفر با سخنان دلنشینشون کوتاه بشه تازه وارد مرد جوان زنده دل حال و خوش‌شهری بود که زود سر صحبت رو باز کرد و پی در پی پرسش میگرد. اون به لباکان گفت که نامش آمره و برادرزاده الفی بی و در انجام دادن فرمانی هست که عموش در مستر مرگ به اون گفته. لباکان خیلی با اون قاطی نشد و جانب احتیاط رو در هم از دست نداد. فقط اشاره کرد که از خاندانی والا تبا رو به خاطر دلش سفر میکنه. دو مرد جوون به هم علاقه شدند و کنار هم پیش رفتند. روز دوم سفرشون لباکان از آمر پرسید که اموش چه فرمانی داده که برای انجام دادنش رنج سفر را به جون خریده و در نهایت تعجب حرفهای سوار همراهش رو شنید. آمر گفت که الفی بی، پاشای قاهره اون رو از همون آوان کودکی بزرگ کرد و خودش پدر مادرش رو نمی‌شناسه. الفیبی در بستر مرگ امر رو احضار کرد و گفت که اون برادرزادش نیست و پسر سلطان بزرگیه که پس از پیشگویی طالبینا در مورد خطرهایی که سر راهش هست اون رو از قصر دور کردند و قسم خورده که اون رو تا زمانی که به 22 سالگی نرسیده هرگز نبینند. الفی بی نام پدر آمر رو نگفت. اما آشکارا براش آرزو کرد که روز چهارم سفرش در چهارمین روز همون ماه که در اون 22 ساله می اون خودش رو به ستون بزرگی که در جانب شرقی اسکندنی قرار داره برسونه. در اونجا مردانی را خواهد دید و باید دشنه ای رو که الفی بی به اون داده به اونها بده و بگه حالا من که شما در جست هستید اینجا. اون در ادامه حرفاش گفت که اگر اونها در پاسخ گفتن سلام خدا بر کسی که نگهدار تو بوده است اون باید دنبالشون بره چون اون رو به پدرش خواهند رسوند. لباکان که بین شگفت زده شده بود به قصه زندگی آمر، بسیار علاقه شد. اون پس از شنیدن حرفهای آمر نتونست جلوی نفس امارش رو بگیره و با چشمونی رشک انگیز و با خش به سلطانزاده آمر نگاه نکنه. چون دوست همراهش در جایگاهی قرار داشت که اون خیلی در آرزوش بود. اون خودش رو با سلطانزاده مقایسه کرد و راستی متوجه شد که آمر جوانی خوشیما و نیک رفتار و خوش سخنه. در همین بین، این اطمینان به دلش راه پیدا کرد که اگر در جایگاه سلطانزاده بود، هر پدر تاجداری از داشتن چنین فرزندی به خودش میباله. این افکار تمام روز اون را رو افزون کرد و تمام شب اونها رو تو خواب دید. صبح زود بیدار شد و وقتی آمر رو با لبخندی شد بچهرش در خواب آرام دید وسفسه اشتیاق گونه در درونش به جنبش در اومد. تا اون چی که سرنوشت نامهربون از اون دریغ کرده بود به زور یا به زیرکی به دست بیاره دشنه ای که برگ برنده و راه بر به خوشبختی بود توی کمر آمر سفت و محکم جا خوش کرده بود لبا کن، اون رو به آرامی از بند کمر در آورد و حتی لحظه ای درنگ کرد و دل موند که آیا اون رو در قلب سلطانزاده خفته فرو بکنه یا اینکه دست به چنین جنایتی نزنه. به هر حال، اون از فکر ارتکاب به قصر منصرف شد و فقط دلش رو به بستنه دشنه به بند کمرش خوش کرد. بعد، به تازنده آمر رو زین کرد و پیش از اینکه بیدار به شهو ببره چی به سرش اومده فرسنگ ها دور شد. دو روز لباکان یک راست به پیش رفت چون ترسش رو داشت که آمر زودتن از اون به محل دیدار برسه. در پایان روز دوم اون ستون بزرگی رو در فاصله دور دید. ستون روی تپه کوچیک در وسط دشت قرار داشت و از دور دیده میشد. قلب لواکان با دیدن این منظره شادی به تپش افتاد. اون وقت کافی داشت که درباره کارهایی که قصد انجامشون رو داشت فکر کنه. حالا وجدانش تا حدودی به درد اومده بود. اما این که اون حتماً از خاندان سلطنتی و سلطانزاده به دنیا اومده توی وجودش به غریان درآمد و با دل و جرعت بیشتری به پیش رفت. زمین‌های دوروبر خشک و متروکه بود. شاهزاده جدید از اینکه با خودش غذا آورده بود، سرحال و شادمان بود. چون هنوز دو روز دیگه تا دیدارگاه اصلی باقی مونده بود. نزدیک به نیمه روز بعد اون رمه بزرگی اصب و شطور دید که به طرف تپه می رفتن. سوارا در پای تپه ایستادند و چادرهای قشنگی برپا کردند. همه چیز نشون میداد که برای همراهی و محافظت از مردی بزرگ آماده می شدند. خان که حدسی زیرکانه زده بود که همه اشخاص به خاطر اون گرد اومدن حوصله به خرج داد و پاپس کشید. زیرا می تونست که آرزوهاش در روز چهار برآورده مراورده ناخوسین رگه های پرتو خورشید براینده حیات خوشبخت رو بیدار کرد. در حالی که اسبش رو زین می میکرد تا به سمت ستون بره نتونست بعضی افکار تاسف بار و هایی رو که به کار برده و همچنین امیدهای برباد رفته شاهزاده واقعی بودن رو از سرش بیرون کنه. اما اون مرگ رو زیر پا گذاشت و بر اثر خودبینی زیر فشار نفس و همه چیز رو نادیده گرفت گویی کسی به نجوا توی گوشش میگفت که اون چیزی از پسر سلطان کم نداره پس با خودش گفت هرچه باد اواد با این افکار اون همه دلیش رو توی خودش جمع کرد روی زیم پرید و در کمتر از ربع ساعت به پای تپ رسید از اسم پیاده شد و حیوان رو به درختی بست و دشنه سرتنانزاده آمر رو در دست گرفت و بالای تپه رفت در پای ستون شش مرد به دور شخصی بلنقد و باوقار ایستاده بودند. اون ردای بینظیر بر برتن داشت و کمربند شال سفید کشمیری بسته بود امامه سفید جواهر اندودش میداد که مردی ثروتمند و از رد بالاست لباکان یک راست به طرفش رفت و تعظیم کرد و دشنر را به دستش داد و گفت من همونم که در جست جویش بودین. مرد پیر که اشک شوق از دیدگانش فرو می ریخ گفت سلام بر جد بزرگی که حافظ تو بوده. آمر، پسر عزیزم، به آغوش هم بیا. خیات مقرور، با شنیدن این سخنان دلنشین از ته دل به سر شوق اومد و با حالتی شرمگین و شاد خودش رو در آغوش سلطان جا داد. اما زمان خوشبختیش کوتاه بود و طولی نکشید که با بلند کردن سرش مردی سوار رو دید که اسب خست و بیحالی رو توی دشت به زور به پیش میرونه. لباکان خیلی زود، مروه، اسب پیر خودش و عامر سلطانزاده واقعی رو شناخت اما از آنجا که یک آر دروغ گفته بود عزمش رو جمع کرد تا نیرنگش رو قایم بکنه. بالاخره سوار به پای تپ رسید. اون از پشت اسب پایین پرید و شتابان به طرف ستون‌دار و فریاد کرد، دست نگه دارید، هرکی هستید، نگذارید که فردی بی آبرو و نیرنگباز باز شما رو گمراه کنه. من آمر هستم، اجازه ندید شخص دیگه خودش رو جا بزنه به جای من. این تغییر وضع ناگهانی حاضران رو به تعجب انداخت. خود سلطان در حالی که از چهره یکی به صورت دیگری چشم میگردون خیلی بیشتر ماتش برده بود. سر آخر لباکان با آرامشی جدی گفت بزرگوارترین سرور و پدرم اجازه ندیدین این مرد نیرنگ باز فریبتون بده تا جایی که میدونم اون شاگرد خیاط نیمه دیوونهایه که به نام لباکان از اسکندریه بیشتر سزاوار ترحمه تا خشم این حرفها سلطانزاده رو به سر خشم برد. اون که خونش بر اثر خشم به جوش اومده بود آن شد که به طرف لباکان هجوم ببره. اما حاضرها به سرش ریختن رو رو محکم گرفتن. بعد سلطان گفت براسی که پسر عزیزم این آدم بیچاره دیوانه است. اون رو باید بست و بر پشت شطر نشوند. شاید بتونیم یه جوری کمکش کنیم. حالا خشم شاستاده برطرف شده بود. اون با چشمهای عشقبار و گریه کنان گفت قلبم میگه که پدرم هستی و تو رو به نام مادرم قسم میدم که منو بپذیری. سلطان گفت آه خدا نکنه باز هم یاوه میگه چطور چنین هایی رو به سر راه پیدا میکنه؟ با این حرفها سلطان دست لباکان رو گرفت تا از تپه به راحتی پایین بیا. هر دو بر اسبانی با برگستوان فاخر سوار شدن و پیشاپیش پیش همراهانشون دشت رو پیمودن. شهازده بخت برگشت رو با دستان و پاهای بسته بر پشت شتری نشوندن. معمولی که با نگاه تنی مراقبش بود شطور رو میروند. سلطان پیر سچت سلطان بچابیت بود. سالهای سال اون صاحب فرزندی نشد تا اینکه سرانجام پسری که اون همه سال آرزویش رو داشت پا به عرصهٔ وجود گذاشت اما فالگیرا و طالبینا که در مورد آینده فرزندش طرف مشورت او بودند گفتند که دا بیست و دو سالگی دشمن جان پسرت رو تهدید میکنه و به اون زخم خواهد رسوند سلطان برای اینکه پسرش از هر خطری دور نگه داشته بشه اون را به دوست وفادار خودش الفی بیس پرد و خودش رو از نعمت و سعادت دیدار فرزندش تا بیست و دو سالگی محروم کرد. سلطان همه حرفاش رو به لباکان زد و از دیدار و رفتار شایستهش بسیار خوشنود بود. وقتی به قلم روی خودشون رسیدن، مردم با فریادهای شادمانه و مسرت بخش به استقبالشون رفتن. چون خبر بازگشت شاهزاده مثل باد آتش پراکن در همه جا پخش شده بود. همه شهرها و روستاها رو آزین بستن و شهرنشینا و روستایی ها هل هل کنان و اونها رو پیش باز کردند. همه این وقایه در وجود لباکان قرور و خوششیفتگی برانگیخت و در حالی که آمر نگونبخت در سکوت و نومیدی فرو برده بود. سرانجام به پایتخت رسیدند جایی که مردم با فریادهای سرور و شادمانی هرچه چه و باش و باشکوه‌تر از هر جای دیگه اونها رو تاغاشت همراهی کردند سلطان بانو و تمام درباریان در تالار بزرگ منتظرشون بودند هوا تاریک شده بود صدها چراغ رنگارنگ آویخته در همه جا شهر را رو مثل روز روشن کرده بود درقشان ترین ها به دور اورنگ سلطنتی که بانو بر آن تکیه زده بود و چهار پله ساخته از طلای ناب با یاقوت‌های ارغوانی داشت آویخته بودند. چهار بالا تبار که سرتاسر قلمرا حکومت از ترین اشخاص بودند سایبونی از پارچه ابریشمین قرمز سیر رو در بالای سر سلطان بانو گرفته بودند و یکی از شیوخ مدینه، با باد بزنی از پر تابوس بادش میزد. با این اوضاع و احوال سلطان بانو منتظر شوهر و پسرش بود اون هم آمر رو از زمان تولدش ندیده بود اما بارها و بارها پسرش رو توی خواب دیده بود و احساس مادرانه به اون می گفت که می تونه فرزندش رو در میان هزار نفر راحتی تشخیص بده حالا نوای شیپورها و بانگ کوبش تبلها و فریادهای هل هلو و شادی مردم نشون از لحظه دیدار میداد. درها باز شدن و سلطان در حالی که دست پسر دروغین رو گرفته بود از دو ردیف درباریان به سوی تخت رفت. سلطان به همسرش گفت بفرما اینم پسرت که سالهای سالچشم به راهش بودی و اما سلطان بانو به وسط حرفش دوید و با صدای بلند گفت نه، این پسرم نیست، این پسرم نیست چون جد بزرگوارمون چهره پسرم رو توی خوابهام به شکل دیگه نشون داده. درست، موقعی که سلطان میخواست همسرش رو با دلایلی متقاعد کنه در بزرگ تالار با سر و صدای زیادی چارتاق باز شد و سلطانزاده آمر در حالی که نگهبانا دنبالش بودند، تا مانه ورودش بشن پا به تالار گذاشت. اون نزدیک تختگاه خودش رو به زمین انداخت و در حالی که نفس نفس میزد گفت همینجا، همینجا خواهم مرد. پدر ستمکارم کارم، فورا جونم رو بگیر. بیش از این تاب شرمساری ندارم. همه به طرف مرد جوان بیچاره هجوم بردن و نگهبانا پوشیدن که اون رو دستگیر کنند. کنن. سلطان بانو که ابتدا با دیدن این صحنه ماتش برده بود و بی حرکت نشسته بود یک مرتبه از جا پرید. اون فریاد زد. <تص> ولش کنید اون پسر واقعیمه نکسه دیگه. اگرچه چه چشمام هنوز اون ندیده ولی به قلبم برات شده که فرزندمه. <تص> نگهبانا پا پس کشیدن. اما سلطان با صدای خشمگین به اونها فرمان داد که مرد دیوانه رو محکم نگه دارن. سلطان فریادکنان انگار که فرمان میده گفت این من هستم که باید داوری کنم. برای داوری درباره این موضوع خواب زنان به کار من نمیاد. ما به مدارک دقیق و درستی نیاز داریم. و با اشاره به لباکان گفت اون پسرمه. زیرا ای که به دوستم الفی داده بودم و برام آورد. دشنه میگم. آمر فریاز زنان گفت اون از من اینو دزیده اون به من و اعتمادم خیانت کرده. اما سلطان گوشش به این حرفها به نبود. چون اون همیشه به اون چی که خودش درست میدونه از بود. به دستورش عامر بخت برگشت رو از تالار بیرون کردن. سلطان به همراه لباکان به کاشانه خودش رفت. چون از دست همسرش با اینکه که سالهای سال با خوشبختی کنار هم زندگی کرده بودن سخت خشمگین بود. سلطان بانو در غم و اندوهی تلخ فرو رفت. چون به خوبی پی برده بود که مردی شیاد و نیرنگباز باز شوهرش رو گول زده و توی قلبش جا باز کرده و خودش رو به جای پسر واقعیشون جا زده. سلطان بانو پس از نخستین باد زدگی و منگی حالش که بهتر شد به فکر رفت که از چراهی وارد بشه تا شوهرش رو متقاعد کنه که اشتباه کرده. البته کار واقعا واقعا مشکلی بود. چون مردی که خودش رو آمر شناسونده بود، دشنه رو که نشونه خاندان سلطنتی بود همراه داشت. و علاوه بر اون، هرچی که در دوران بچگیش رخ داده بود به طور دقیق تعریف کرده بود. سلطان بانو، پیرترین و داناترین ندیمه هاش رو صدا کرد و از اون راهنمایی خواست اما هیچی از اونها حرفی برای گفتن نداشت سر آخر یکی از اونها که زن سالار بسیار باهوشی بود گفت آیا مرد جوونی که دشنر آورده به سلطان بزرگ نگفته که مرد دیگر خیاط دیوونه است سلطان بانو جواب داد درسته اما منظورت چیه؟ ندیمه پیر گفت آیا ممکنه مرد نیرنگ باز خودش رو به عنوان پسر واقعیتون معرفی کرده باشه؟ اگر چنینه من به روشید جانانه میتونم حقیقت رو آشکار کنم. اون سخنانی در گوش سلطان بانو نجوا کرد که ظاهرا به دلش نشست. زیرا فوراً به دیدار سلطان رفت. خب این را هم بدونید که ملکه زنی باهوش بود. پس اینطور وانمود کرد که دچار اشتباه شده. اون از سلطان تقاضا کرد که به اون اجازه بده تا دو مرد جوان رو برای اینکه معلوم بشه کدام شاهزاده واقعیه امتحان کنه. سلطان که به خاطر رفتار تند و خشمگینانه با همسر عزیزش شرمسار بود، فوراً رضایت داد. ملک گفت بدون شک افراد دیگری از اونها خواستن که اسب بتازن یا تیراندازی کنن یا کارهایی از این دست انجام بدن. هر کسی حسمن تا اندازهی با این کارها آشناست. اما مهارت در سواری یا تیراندازی نیاز به آموزش داره. البته من میخوام که اونها دست به کار دیگهی بزنن که نیاز به هوشیاری و زرنگی داره. من از اونا میخوام که بهترین قبا و شنوار رو بدوزن. سلطان خندید و گفت: نه نه حرفش رو هم نزن آیا فکر می‌کنی که پسرم با اون خیاط دیوونه که مسلما توی کارش است می‌تونه رقابت کنه؟ آه عزیز دلم نه این کار اصلا شدنی نیست ملکه به سلطان یادآوری کرد که قول داده و از اونجا که سلطان معتقد بود مرد و قولش سرآخر قبول کرد اون سمت پسرش رفت و گفت که باید به حرف مادرش عمل کنه و براش قبا بدوزه دوزه. که توی کار دو دوزندگی استادکار بود توی دلش خندید. اما پیش خودش فکر کرد اگر ملکه دلش چنین چیزی میخواد خیلی زود شادش میکنم و خاصه قلبیش رو براورده میکنم. دو اتاق مجزا آماده کردند و در هر اتاقی پارچه و غیتشی و سوزن و نخ گذاشتند. دو مرد جوان هر یک به یک اتاقی رفت. درها رو به روشون متن و اونا سرگرم کار شدند. سلطان تا حدودی کنشکاب بود که ببینه پسرش چه تمپوش فاخری میدوزه و ملکه نیز بسیار نگران بود که ببینه نتیجه آزمایش چی میشه. روز سوم دنبال دو مرد جوان فرستادن تا دستوزشون رو بیارن. اول لباکان اومد و قبارو مقابل چشمای شگفت زده سلطان روی زمین انداخت. اون گفت ببین پدرم ببین مادر بزرگوارم آیا این شاهکار دوزندگی نیست؟ شرط میبندم که حتی خیاط دربار هم نمیتونه قبایی بهتر از این بدوزه. بعد ملکه رو به آمر کرد و پرسید حالا پسرم تو چی کردی؟ آمر با بیحسلگی پارچه و قیچی رو رو زمین انداخت و گفت من اسب سواری، شمشیرزنی و نیزه تا شست گام رو یاد گرفتم. اما هرگز دوزندگی یاد نگرفتم. چون چنین کاری در شعن شایرد الفی بی روای قاهره نبوده. ملک بانک زد. آه، تو ثابت کردی که پسر واقعی پدرت هستی. کاش تو رو در آغوش میگرفتم و پسرم میخوندم. بعد رو به سلطان کرد و گفت. سرورم، شوهرم. منو ببخش که سعی کردم به این روش حقیقت رو به تو آشکار کنم آیا با چشمان خودت نمیبینی که کدم شاهزاده و کدم خیاطه به راستی که قبای دوخته شده بسیار ظریف و فاخره اما دلم میخوات بدونم که کدام استاد به این جوون تعلیم داده که چنین جامعه فاخری بدوزه سلطان عمیقا توی فکر فرو رفت اون گاهی به همسرش و گاهی به لباکان که نهایت سعیشو رو میکرد تا آشفتگیش رو به خاطر همه که کرده پنهان کنه نگاه میکرد. سرانجام سلطان گفت حتی این آزمایش هم منو مناغانه کنه اما خوشبختانه یه راه مطمئنی پی بردم تا معلوم بشه که آیا فریب خوردم یا نه. سلطان دستور داد که چابکترین عصبش رو زین کنند. اون بر پشت اصل نشست و مثل باد به طرف جنگلی که کمی دورتر بود تاخت. در جنگل پری مهربانی به نام عدولزید زندگی می کرد که به پادشاه ها و سلاتین و نیاکانش توصیه ها و های خوبی می کرد. سلطان به اون متوصل شد. وسط جنگل فضایی بود که گرداگردش رو درخت های سرب پوشونده بودن. گمان همگی بر این بود که این محل دل این جا برای پریانه. وقتی سلطان به اونجا رسید از اسب فرود اومد. حیوون رو به درختی بست و به میانه ی فضای باس رفت و گفت اگر حقیقت داره که تو در مواقع ضروری به نیاکانم کمک کردی پس بازماندگانش رو هم از پند راهنماییت محروم نکن. منو راهنمایی کن. چون آدمیزادگان در مشکلی که برام پیش اومده نتونستن گره از کارم باز کنند. تازه حرفش تمام شده بود که تنه یکی از صرف ها باز شد و پیکرهی با روبند و جامعهی سرابا سفید از شکاف پا بیرون گذاشت. بانوی بیرون اومده از صرف گفت سلچان سچه، از اشتباهاتت آگاهم. هم، از جایی که واقعی پیشومده اومده موردی جدیه به تو کمک میکنم این دو جعبی کوچیک رو بردار رو از دو مرد جوونی که ادعا میکنن پسرتن بخواه تا هر کدوم یکی از جعبه ها رو انتخاب کنه. میدونم که شاهصاده واقعی توی این کار اشتباه نمیکنه. اون دو جعبی کوچیک ساخته از آج رو که طلا و مرواری کو بودن به دست سلطان داد. روی در کوچیک هر جعبه که سلطان بیهوده سعی می کرد بازشون کنه نوشته الماس کوبی وجود داشت. یکی از کلامات الماسین افتخار و شکوه مندی و کلمه دیگه ثروت و خوشبختی بود. سلطان تو راه بازگشت به قصر با خودش فکر کرد براسی که انتخاب بسیار دشواریه. سلطان بیان که وقت تلف کنه فورا دنبال سلطان بانو همه ی درباریان فرستاد. وقتی همه حاضر شدن با علامت او لباکان به نزدشون آورده شد. اون که پای وجودش آکنده از غرور بود به طرف تختگاه سلطان رفت و زانو زد و پرسید سرورم، پدرم، چه دست میدید می دید؟ سلطان گفت پسرم، سایه از شک و تردید در مورد هویت و نام در همه جا سایه انداخته یکی از این جعبه ها دهنده اصالت و تباره انتخاب کن، شک ندارم که جعبه درست رو برمیداری سلطان به جعبه های آجین که روی دومیز کوچیک کوچیک نزد تخت قرار داشتن اشاره کرد. لباپان برخاست و به جعبه ها نگاه کرد. چند ای به فکر فرو رفت و بعد گفت پدر هرجمندم، برای من چیزی برتر از سعادت فرزند شما بودن نیست. چیزی هم عزیزتر از ثروت و علاقه من به شما نمی باشه. پس من جعبه رو انتخاب میکنم که کلمات ثروت و خوشبختی رو دارد. سلطان گفت بزودی بر برما آشکار میشه که آیا جعبه درست رو انتخاب کردی یا نه؟ فعلا کنار پاشای مدینه بنشین. مدتی بعد آمر که اندوه و غمگیم بود به تالار اومد. اون خودش رو به پای تخت سلطان به زمین انداخت و پرسید که چی کار باید بکنه تا رضایت سلطان رو به دست بیاره. سلطان دو جعبه رو به اون نشون داد. مرد جوان، جا بلند شده به طرف میز ها رفت. اون با دقت زیاد نوشته های روی جعبه را رو خوند و بعد گفت: در چند روز گذشته به من آشکار شد که خوشبختی امری نامطمئن و ثروت هم به از دست میره. من افتخار و شکوهمندی رو میخوام. با گفتن این حرف دستش رو روی جعبه مورد نظرش گذاشت. سلطان به اون علامت داد که صبر کنه و دستور داد که لباکان هم دستش رو روی جعبه‌ای که انتخاب کرده بود بذاره. سلطان با حالتی وقارآمیز از تخت بلند شد. همه حاضران از جا ها بلند شدند. سلطان گفت: جعبه ها رو باز کنید، باشه که خدا حقیقت رو به ما آشکار کنه. جعبه ها خیلی راحت باز شدند. توی جعبه که عامل انتخاب کرده بود، تاج زرین کوچیک و اسای کوچیک سلطنتی روی پارچهی مخملین قرار داشت. توی جعبه انتخابی لباکان، یه سوزن بزرگ با مقداری نخ دیده می‌شد. سلطان به مرد جوان گفت که جعبه ها رو به نزدش ببرد. اون تاج کوچک رو به دست گرفت و در حالی که اون رو بالای سر می برد، بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه به اندازه واقعی خودش رسید. اون تاج رو به سر پسرش عامر گذاشت و بر پیشونیش بوسه زده و اون رو سمت راست خودش نشون. بعد رو به لباکان کرد و گفت: "مثلی قدیمی میگه از کوزه همان برون ترابت که دروست تو بهتری که به سوزنت بچسبی." البته سزاوار هیچ بخششی نیستی. اما به مبارکی این روز خوجسته نمیخوام خوشونت کنم و خونی بریزم. از خونت میگذرم پس هرچی تر و زودتر از این کشور دور شد. حیات بخت برگشته شرمسار و پریشون پاسخی نداد. اون خودش رو به پای عامر انداخت و با چشمای عشقار پرسید. شاهزاده، آیا تو هم منو میبخشی؟ آمر در حالی که اون از جاش بلند می کرد گفت میبخشمه با خیال راحت برو. سلطان پسرش رو توی آغوش کشید و با صدای بلند گفت آفرین به تو پسر واقعی من. و همون موقع پاشاها و امیران فریاد زدند زنده باد شاهصاد آمر. در بین سر و صداها و های شادی حاضران، لواکان جعبه کوچکش رو زیر بقل زد و, یه و شکی فرار کرد. اون به تعویله رفت. اسب پیرش مرو رو زین کرد و از دروازه گذشت و به سوی اسکندریه حرکت کرد. از جعبه آجین با نوشته الماسین بر روی در کوچکش بر آن آشکار شد که وقای چند هفته اخیر خواب و خیال نبود. همین که به اسکندریه رسید، یک راست به طرف خونه صاحب کارش رفت. وقتی وارد مغازه شد، صاحب کارش از او پرسید که این همه مدت کجا رفته بود. او همین که فهمید لباکان دست به چه کارهایی زده، کارگرها رو صدا کرد و همه اون رو زیر مشت و لگت گرفتن و هرچی به دهانشون رسید بارش کردن. لباکان که طاقت اون همه مشت و لگت رو نداشت نیمه قش به روی تلمبارهایی از پارچه های کهنه افتاد. صاحب دکان دوزندگی لباکان رو به خاطر دوزیدن ردا به باد سرزنش گرفت. او هم هرچند که بیفایده بود گفت که اومده جبران کنه و سه برابر ضرری که زده رو بپردازه. اما اونها باز هم به جونش افتادند و تا داشت کتکش زدن رو او رو نیمه جان از مغازه بیرون کردند. اون که دید چارهای براش نمونده سوار برعص شد و به طرف مهمون سرایی به راه افتاد. در ای دنج نشست و زخما و های بدنش رو تیمار کرد و در باره هاش به فکر فرو رفت. حالا اون تصمیم گرفت که دیگه دنبال کسب به جاه و مقام نباشه و با کار و کوشش زندگی درست کارانه ای رو پیش بگیره. صبح روز بعد دست به کار شد، تا تصمیمی رو که گرفته بود عملی کنه. جبه کوچک رو به قیمت خوب به جواهر فروش فروخت. خونه خرید و دو زندگی باز کرد. روی سردر تخته ای با نوشته لباکان خیاز آویزون کرد. و قبل از هر کاری لباس های پاره خودش رو با همون سوزنی که توی جعبه آجیم بود رفو کرد. در حالی که سرگرم دوخت و دوز پارگی های لباسش بود، اون رو صدا کردند تا به جایی بره. وقتی به کارگاه برگشت، با اتفاق عجیبی روبرو شد. سوزن بی اون که کسی اون را تو دست گرفته باشه، داشت پارگی ها رو رفو می کرد. و چنان کوک های ریز و بینظیری میزد که لباکان تا اون زمون هرگز نتونسته بود با تمام مهارتش چنان کوک هایی به لباسش بزنه. کاملا آشکار بود که پری مهربون با کوچکترین هدیهی به اون داده بود با ارزشترین محبت رو در بهجا به جا آورده بود اما فقط سوزن شگفتانگیز محبت پری مهربون نبود بلکه رشته نخ نخم به سوزن پیوسته بود که هرچی سوزن میدوخت نخ رو پایانی نبود به زودی مشتری های زیادی پیدا کرد اون پارچه رو برش میداد و اولین کوک رو میزد و بقیه یه کار رو به سوزن جادویی میسورد. خیلی نگذشت که همه اهالی شهر به کاغاهش رفتن و به اون سفارش لباس دادن. چون هون هم در کارش استاد بود، هم پول زیادی مطالبه نمی‌کرد، البته معمایی در ذهن همه بالا و پایین می‌شد که اون چطور میتونست تک و تنها اون همه سفارش بگیره و تند و زود لباس بدوزه و تحویل مشتریاش بده. معمای دیگری هم تو ذهن مردم رو پر کرده بود چرا اون در پشت درهای بسته مغازش دو زندگی میکنه این گونه بود که نوشته روی جعبه آجین یعنی ثروت و خوشبختی براش به ثمر نشست و جامعه حقیقت پوشید درباره شاهزاده آمر هم خبرهایی به اون می رسید. وقتی از کردارها و های سلطانزاده آمر با خبر شد و متوجه شد که اون محبوب دلهای مردم و خاری تو چشم دشمنان پیش خودش فکر کرد من که میخواستم جای سرحزاده رو بگیرم خوشحالم که حالا دو زندگی سرشناس شدم چون افتخار و شخوه با دستیازی به کارهای خطرناک به دست نمیاد